بسم الله الرحمن الرحیم بحث مستثنا به وسیله الا رو در درس قبلی خواندیم ولی در ادبیات و زبان عرب ادات دیگه وجود دارند که برای استثناء به کار می روند. در این درس نویسنده اون عدات رو آورده است و اعراب مستثنای رو که به وسیله اینهاست هم توضیح میداد غیر سیوا خلا عدا حاشا ما خلا ما عدا ليس لا يكون عداتی هستند که به غیر از الا میشه باشون استثناء کرد اما اعراب همه مستثناء که بوسلینگ نه است یکسان نیست یکی نیست مال بعضی مجبورن مال بعضی منصوب مال بعضی هم میتونن منصوب باشن و هم مجبور و یستثناء به غیر و سوا خافضین میگه مستثناء به وسیله غیر و به وسیله سوا مجرور هست مستثناء به وسیله غیر و سوا چه هست؟ مجرور هست مانند جا القوم غیر زیده ببینیم که زید مجرور هست جا القوم سوا زیده حالا سوالی که متره میشه این است که خود غیر و سوا رو چه اعرابی بدی؟ بله معربینی به اعراب الاسم بعد ایلا میگه غیر و سوا اعراب میگیرند اعراب اسمی رو که بعد از ایلا میومد مرور کنید بحث ایلا رو دوباره اگر کلام تام و موجب میبود مستثنه به وسیله ایلا منصوب میشد حالا همون اعراب و الان اینجا به غیر میدیم جا القوم الا زیدن جا القوم زيدن چه اعرابی داشت به غیرش میدید جا القوم غیره زیدن جا القوم الا زیدن اعراب زیدو اینجا در این جمله به غیر جا القوم الا زیدن جا القوم غیره زیدت خود مستثنا که به غیر و سواهم مش معتروبه الان بحثمون روی اعراب خود کلمه غیر و سوا هست اگر غیر موجب بود دو اعراب در مستثنا جائز بود ما جا القومو الا زیدن ما جا القومو الا زیدن اینجا هم همین کارو میشه کرد ما جا القومو غیر زیدن ما جا القومو غیر زیدن در منقطع تمیمی ها دو اعراب میدادن و حجازی ها یک اعراب تمیمی ها میگفتن میتونه منصوب باشه و میتونه اعراب بدل ما نندي ما قام القوموا إلا حماراً وتميّمهم جفتن جائزاس كبيرين ما قام القوموا إلا حماراً خلنا بغيرهم من كارو بقولين ما قام القوموا غير حماراً ما قام القوموا غير حماراً أما حجازيهم جفتن باید من سب شيء ما قام القوم غير حماراً أجر غير الثامبوت بحسب عمل مستثمر بوسيلة إلا إرام مغرفت إنجا غير همين حالات داري ما قام ما جاء إلا سعيد ما جاء غير سعيد ما رأيتو إلا سعيد ما رأيتو غير سعيد ما مررت إلا بزيد ما مررت بغير زيد بس همون اعراب رو که مستثنا به وسیله الا داشت غیر سوا همون سواهمون اعراب میگیرند و, و مستثنا به وسیله این دو کلمه خودش مجرور میشه وبخلا و عدا و حاشا نواصب او قوافظ مستثنا به وسیله خلا و عدا و حاشا نواصب او قوافظ منصوب میتونه باشه او خوافظ یا مجرور چون این خلا و عدا حاشا هم حرف جرند هم فعل اگر شما اینا رو حرف جر در نظر بگیرید اون موقع موسسش مجرور میشه اگر اینا رو فعل در نظر بگیرید اون موقع فاعلشون درشون مستتر میشه و مستثنا مفعول واقع میشه مانند ما جا القوم خلا زيتن اگر خلا رو حرف جر در نظر بگیرید اما اگر فعلش در نظر بگیریم ما جا القوم خلا زیدان پس مستثنا به وسیله خلا و و حاشا میتونه منصوب بشه میتونه مجرور بشه بسگی داره که ما این خلاو و و حاشا رو چیت در نظر بگیریم و بما خلا و بما ادا و لیسا و لا یکول نواصبه اما مستثنا به وسیله ما خلاو و ما ادا و و لا یکول منصوب است چرا چون ما کروی روی خلا و اون موقع دیگه نمیشه حرف جر اینا رو در نظر گرفت چون ما روشون اومده ما رو فعل میاد اون موقع پس مستثنی مفعول اینها میشه و همیشه منصوبه. ما نده قامل قومو ما خلا زیادان قامل قومو ما خلا ما عدا زیدن. اما ليس ولا یکون ین از ناقصه انت. و اینا یک اسمی دارند یک خبری اون موقع ما مستثنای که بعد از ليس و لا اومده رو خبر لیسا و لا قرار میدیم مهمیشه منصوبه مانند جاء المسلمون ليس زیدا جا المسلمون ليس زیدان میگیم زیدان خبر لیسا هست و اسمش مستتر هست به همین سادگی این بحث تمام شد. یه شعری رو آورده است. این رو هم ترکیب کنیم. علا كل شيء ما خلى الله باطل و كل لا محاله زائل. آگاه باش هر چیزی جز الراه باطل شده نیست و هر نعمتی هات قطعاً زائل شده نیست. حرف تنبیه هست. کل شیء باطله. ولی در واسطه جمله موثرزی آورده است. آلا کل شیء ما خال الله باطله. ما خال الله خودش یک جمله موثرزی هست یک جمله مستقل هست در واسطه اگه حسش کنیم میشه آلا کل شیء باطله. پس کل میشه مبتدا مضاف شیء مضافون عليه باطله. خبر کل میشه. ما خال الله ماخلا عدات استثناء هست، فعل هست، فائلش مستطر هست، الله مفعول هست این شد از مستثنای با عدات جزء الله موفق و پیروز باشید